بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء وسيد الموسلين وآله والصحبه أجمعين اما بعد دمبولي بحث سيرات ردوري ما بحث سيرات دمبولي قد سيب عبد المتلب ها ما قفتم كعبد المتلب كدر بذلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر میکنند که اگر خداوند ده تا فرزند پسر بوده بدهد یک از اونها رو قربانی میکنه بعد قرارکشی میکنه اسم عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون میاد بعد میره پیش یک کاهنی، پیش یک عرافی که او راهنمایی بکنه چه کار بکنه الان در یک مشکلی افتاده نمیخواد دوست نداره فرزندش رو قربانی بکنه خوصم فرزند عزیزشه کچکتنه فرزندشم هست میاد دو راهنمایی میکنه که به جای فرزندت ده تا شطور رو قربانی بکن خب میاد خورکشی میکنه بین ده تا شطور و, رسول الله الله و بین پدر رسول الله صلی اللہ عبدالله بعد در زمن اون خورکشی بازم اسم عبدالله بیرون میاد این کار رو ده بار تکرار میکنه هر بار تکرار میکنه اسم عبدالله بیرون میاد از در ضمن اون خورکشی ها تا اینکه در بار آخر دهمین ده بار بین تا شطور و عبدالله اسم ستا شطور بیرون میاد بعد ستا شطور در راه خدا قربانیش میکنه خب این قصه عبدالمطلب و پرورانه کردن فرزندش عبدالله خب ما گفتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیم به دنیا آمدن در همون سال بحث ولادت رسول الله صلی الله علیه و بحث عام الفیل که که یک ترین في تضليل. يحط خراب بکنه برای خودش کلیسایی ساختن میخواد مردم را جمع بکنه کسی دیگه طرف کعبه نره کعبه ابراهیمی بعد لشکرشو را جمع بیکنه بعد شروع به جنگ میکنه که بخواد الان بیاد یکی یکی عربا را شکست بده تا بیاد کعبه را ویران بکنه و خراب بکنه تا اینکه که میرسه به نزدیک های مکه دیویست از یا ست شتر از عبد را میگیره بعد در ضمن همون حالا حجومش درخواست میکنه که عبد که حالا یک از سران بزرگ پرهیش هست به نزدش بیاد. خب عبد میاد. حالا نمیدونه که خودش بره پایین یا عبد بیاد کنارش بریشینه. اگر خودش بره پایین که عبد رو یا خودش رو کوچک کرده اگر عبدالمطلب المطلب را بیاد بالا، بازم خودشو کوچک کرده در نتیجه حالا میره پایین در خنار عبدالمطلب المطلب می میگه که چه کار, چه کار میکنی؟ چه نظری داری؟ ما میخوام کعبه را خراب بکنم این چیلی تخمیم این میگیره بعد عبدالمطلب میگه ستا شطورم که برداشتی به من بهم بر بگردان بعد تعجب میکنه فکر فکرم میگه که تو از این آقلتری بعد عبد میده چنین جواب میگه که من سرپرست شطورها هستم من صاحب شطورانم وللبيت رب یحمی و با اون کعبه و اون خانه کسی هست که صاحبی داره که ازش دفاع بکنه خیلی بحث مهمیه. یعنی ما از تکتی که از قصه‌های های سیرت نبوت صلی الله علیه وسلم باید درس بگیریم خدا من هیچ وقت بندگانشو رها نمیکنه و هیچ وقت دینشو رها نمیکنه خداوند حفظ خواهد کرد و این دین را حفظ میکنه هر کسی الان به شیوهی بخواد بیاد به این دین حانت بکنه یا بخواد مسلمان را حانت بکنه خداوند از مسلمان و از اسلام دفاع خواهد کرد خب قصه خاتمه پیدا می به قصه یه با همون قصه سوره فیل که ما داریم میاد با فیلاش حجوم بکنه و عبابیل میاند و اونها را نابود میکنن و اونها از بین میرن خب در اون سال رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا اومدن ما گفتیم در ضمن ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم لقصه هایی هست های که ثابت نیست از جمله اینکه رسول الله ختنه به دنیا اومدن در بعضه روایت عبدالمطلب اون رو ختنه کردن همین روایت ها است یا اینکه نمیدونم کاخ کتراب و نمیدونم ارهاساتی بود و نمیدنم بود در نبوت رسول الله یا در بلادست رسول الله که همین ها ثابت ها سنها که ثابته این که آمنه اقرار میکنه که وقتی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم به دنیا آمدن نوری ازش خارج شد که اون نور از کاخای یا در کاخای بصره دیده شد از حیقتش ادامه قصه ها یعنی این قصه ما بخوام به همین صورت ادامه بدیم شاید از ذهن بپره چون حادثه به حادثه الان درس ها شاید کمتر باشه چون وقایع تاریخی هست در این وقایع تاریخی ضبطش بالاخره برای انسان سخته کلا بخواد مسئله مسئله ازش درسی سم بکنه یا درسی بگیره ما گفتیم کلا وقتی که می خوام صحبت بکنیم به 10 دقیقه یا حداکثرش رو دوستانم درخواست کردن که ما تا حدود رفضت صحبت بکنیم لیکن حالا فعلا ما روی همین درجه هستیم خب رسول الله صلی الله علیه وسلم به دنیا میاند وقتی که به دنیا اومدند او را تحلیل سهرانشینا میدن که در اونجا ترگذردش ها چه گفتیم یتیم به دنیا اومده وقتی بحت، که در سیرت علمه سیرت بهش اشاره میکنند بحتی کسانی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر دادند یکی سویبه هست و یکی حلیمه سعدیه من امروز قصه سویبه رو میگم تا اینکه ان الله در هفته‌ی آینده به قصه حلیمه اشاره اشاره بکنیم قصه سویبه در بحث شیر دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی ام حبیبه بنت ابی همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش پیشنهاد میدن که با خواهرش عزه اززواج بکن عزه بنتا بسوفیان بعد رسول الله صلی الله عليه و سلم چنین سآل می کنید اما ذلك دوست داری که من باشه ازدواج بکنم قالت نعم و ما انا به مخلیه یا به مخلیه من بدون حقوق نیستم یعنی زنهایی که داری زیادن و بذار این یکی هم زیاد بشه بذار در خیر با هم شریک بشه خواهرم. بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که برای من درست نیست که با خاهر ازدواج بکنم. بعد میگوید که اما حبیب دنبال میگوید که یا رسول الله چن ما چینین حرف میزنیم و سخن میگوییم که بعضی آیا چینین سخنی میگن که شما دوست دارید با دره بنت عبی سلمه اززواج بکنی. بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند لو, لو, لو لم تکن انها ربیبتی فی حجری لما حلت لی اگر ربیبه من نبود دختر همسرم نبود و در خانه من بزرگ نشده بود در خانه من نبود اگر نبود بازم درست نبود چرا؟ چون ابو سلمه پدر دره هر دوتاشون میگه من و ابو سلمہ با هم از سویبه از سویبه با فس نقطه هر دوتا با هم از سویبه شیر خورده این برادرم برادر شیرگی من هست که درست نیست من با اون ازدواج بکنم بعد از الله صلی الله علیه و سنت دستور میدن که لا علیه علیا بناتكم بناتكن ولا اخواتكن دیگه خواهراتون و دختراتون به من پیشنهاد ندید که باشون ازدواج بکنم حالا در زمین این قصه درس هست هم برای مردها هم برای زنها از جمله مسائلی که در این قصه هست بحث خیرخواهی زنا هست بین زنهای صحابه امهات المؤمنین و زنهای امروزی چقدر خیرخواه بودند برای خواهرشون دوست داشتن که بالاخره بهترین شوهر داشته باشه این یک از مسائلی هست که حالا در این قصه نهفته است حالا مسائل دیگه هم هست که ان الله در حفیهنده به اشاره خواهیم کرد و همچنین به حلیمه و صلی الله علی محمد و